فصل سوم بخش دوم دو وقتی خودم را معرفی کردم و اسم پدرم را گفتم پرسید عجب دختر امیر هزارکوهی مازندارانی هستید نقاشی هم می‌کنید این لحن تمسخر او مرا آزرده نمیدانم پهلوی خودش چه فکر کرد بعدها این حادثه رو هزار بار از مد نظر گذراندم حتما فکر کرد این دختری حوص باز آمده است، ناز و غمزه بفروشد و بعد برود همه جا بگوید که با فلان کس نقاشی که سرشناس و مورد احترام همه ی رجال فهمیده است، آشنا شده. نه. به من رو نداد که نداد. بلند شدم. خداحافظی کردم، سانی ای ایستادم. اما اما اونشان نداد که میخواهد به من دست بدهد. فقط از روی صندلی نیمخیز بلند شد و من رفتم. قیز عجیبی به من دست داد. هیچ مردی تا آن روز این طور با من رفتار نکرده بود. نمیدانم به چه دلیل در هر صورت آن روز نفهمیدم. کینه ای از این مرد خشکی بیتربیت در دل گرفتم دماغ مرا خواهش خواهشمندم توجه کنید رفتار این مرد در زندگی من تأثیر داشت و واقعا اگر کمی مهربان تر با من رفتار میکرد شاید فرصت پیدا میکردم که ذوق خودم را پرورش دهم وقتی از خاش بیرون آمدم نزدیک بود گریم بگیرد. پرهای بینیم میلرزید از همه چیز بیزار شده بودم. همش فکر میکردم که دلیل این طرز رفتار او با من چه بوده است؟ چیزی دستگیرم نشد. هرچه بخواهم عواطف آن روز خودم را برای شما بگویم و تجربیات بعدی خود را داخل آن نکنم نمی شود. باز هم آنچه امروز ادراک می کنم کمابیش با آن مخرود می شود. مراحل زندگی را نمی شود از هم جدا کرد. اگر من دیگر استاد را نمیدیدم و خاطراتی که از او در سینه من نقش بسته دیگر وجود نداشت آن وقت همین حادثه به این مهمی هم در دل و روح من هیچ ماهری نمیگذاشت. اما آن روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد. نتوانستم علل رفتار خود و سلوک او را تحلیل کنم اما الان که دارم حواسه تقریبا بی سال پیش را می گویم گویی چنین استنباط میکنم که همان روز به دل من برات شده بود که این مرد این مرد خوش که نمی نمیتواند برای من یکسان باشد در هر صورت تصویری که از او در دل من نقش بست تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودش را در دنیا نمیپرستید آه ای کاش همین طور بود تاثیر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی ماند میدانم شما از روی چشمایی که در این پرده به شما نگاه می‌کند درباره‌ی من قضاوت می‌کنید. شما تصویر ناروای از من در مخیله‌ی خودتان ترسیم کرده‌اید. حق هم دارید. می‌دانید بدبختی من چیست؟ بدبختی من این است که گاهی خودم هم خود را زن زشت‌خویی می‌دانم. خود را گناهکار می‌دانم و تقصیر مرگ استاد را به گردن خود می‌اندازم. در صورتی که اگر من امروز آنقدر بدبخت هستم زنی بی یار و یاور، زنی بی کس و ویلان، زنی بی شوهر و بی برادر و بی همه کس و از همه بدتر زنی بی دوست و بی رفیق. من نمیخوام خاطرهی شفافی که شما از استادتان دارید، کدر و لکه دار کنم. نه. اگر مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام است، همین اوست. استاد شما همه چیز من بوده است. و من ابدا راضی نمی که خاطر او در آینه خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفتد. اما محض خاطر او همه چیز خودم را از دست دادم. می توانستم شوهر داشته باشم. فرزند بپرورانم چرا شوهر کردم؟ محض خاطر او. چرا تلاق گرفتم؟ محض خاطر او. چرا دوست و رفیق ندارم؟ محض خاطر او.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 مگر به شما نگفتم، شاید من باعث قتل او شدم، شاید فریب خوردم، شاید او را نمیخواستن بکشند، شاید او را فقط تبعید میکردن، و اگر من همراه او رفته بودم، شاید او زنده میماند، و شاید هزار تا شاید، راستش این است که چیزی میخواهم به شما بگویم، چیزی که خودم خوب میفهمم و ادراک میکنم، اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن بدهم و به شکلی درآورم که قابل فهم باشد. من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه میخواهم همیشه قوای متضادی من را از یک سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم. بدبختی من در همین است. همیشه دو دل بودم.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 شاید ملتفت می شوید. شاید روش دیگری در زندگی پیش می گرفتم. ببینید. گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم. اما در نظر مردم از من خوشبخت کسی در دنیا نیست. زنی هستم و تمویل. همه چیز دارم. دائما در سفرم. بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران میآیم پول دارم. پول، آخ، نکبت ببرن این پول مرا ویلان و سرگردانم، هیچ آرامش ندارم پدر و مادر دارم، آنها در کربلا مجاور شدن و دیگر مدتی است که به آنها هم نامه نمی نویسم مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم آخ، چه خوشبخت از این کبوتر پیر من هیچ آرامش ندارم لانهی ندارم که به آنجا دل ببندم تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است. کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدم. کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت. آن وقت جانم را فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه می کنید؟ بله. من یک بار تن خود را فدای استاد کردم. حق دارید. خنده دار است. خودم همگاهی خنده هم می گیرد. اینها را حس می کنم. اما به احساس خودم هم عقیده و ایمانی ندارم میترسم که احساس اتفم حتی درباره خودم هم دروغ باشد همه زنهای این شهر به حال من قبطه میخورند مردها در دست من مثل موم هستند با دو کلمه شیرین میتوانم آنها را فریب بدهم با آنها هرچه میخواهم میتوانم بکنم مثل مگس دور من پرپر میزنند اما خیال می کنید خوشبختی همین است. من هیچ کس رو ندارم که با او درد دل کنم. من با هیچ کس محرم نیستم. همه فریفته و شیفته زیبایی من هستند. هنوز هم به من دل میبازن. ولی من با هیچ کس دوست نیستم. امان از زنها. آنها همه به من میخندند. اما طی دلشان از من بیزارند. و همهشان تصور میکن که من رفیق ها و نامزد ها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخم میتوانم از آغوششان بیرون بکشم در صورتی که این جور نیست آقای نازم این جور نیست حال میفهمید که چقدر من در زندگی زجر میکشم به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا آوردید بیزارم برای اینکه او هم مرا همینجور شناخته بود من همش دور میزنم و نمیتوانم مطلب را مسلسل بیان کنم. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید. بگذید کمی دقت دلم را خالی کنم. یک گیلاس کنیاک برای خودش ریخت. این گیلاس دوفم بود. یکی هم برای من ریخت. مال خودش را کمی چشید و روی میز گذاشت. بعد کمی فکر کرد. چه داشتم می گفتم؟ نمیدانم چه میخواستید بگویید اما من دلم میخواهد که همینجور که حرف میزنید ادامه بدهید اینطور بهتر برای من مجسم میشوید میخواستید بگویید چه احساسی به شما دستت وقتی از کارگاه او بیرون آمدید. بله همین است باور کنید که من بعدها مخصوصاً از وقتی از تهران رفتم اقلاً هزار بار درباره این چند دقیقه‌ای که از لا به خانه برگشتم فکر کردم آخر ببینید. من که او را نمیشناختم من که از اخلاق خصوصی او هیچ اطلاعی نداشتم. فقط چیزی که فهمیدم این بود که او از کارهای من خوشش نیامد. او از کار هیچکس کس هیچ وقت تعریف و تمجید فوقالادهی نمی نمیکرد. او درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت می کرد. او اصلا عادت نداشت به چیزی ولی آنکه خیلی هم مورد پسندش قرار می ابراز علاقه بکند. من این را نمی دانستم.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 خوشبخت می شدم، یا نمی شدم، اما بالاخره زندگی داشتم، مثل همه مردم بودم. مرتفت می چه می خواهم بگویم؟ رفتار او در کارگاه نقاشی در زندگی من تأثیر قاطع کرد. چه می گفتم؟ در اتاق نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدم با لحنی که برای من خیلی سنگین آمد پرسید. چرا مرا معطل کردی؟ مگر قرار نبودیم ش فلانجا برویم با چنان قیسی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی ندیدم در صورتی که به راستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمانی که به مناسبت روز تولد یکی از دوستان مشترکمان ترتیب داده شده بود برویم مادرم که به وسیله فز سلطان از طرز سلوک من با او اطلاع حاصل کرده بود چند روزی به من قهر مگر با مرد غریبه اینجور رفتار می کنن. مگر بی‌خودی مردم را از خود میرنجانند لگت به بخت خودت زدی شنیدم پسرک به یکی گفته بود آدم نمی داند با این دختر چجور باید رفتار کند گاهی دلش می با کارت شکمش را پاره کند یک ماه با خودم قهر بودم ملاقات با او را فراموش کردم اما همونطور که گفتم یک چیز گم شده ای داشتم سابقا کار من همش خرید رنگ و قلم و و و کاغذ و مداد و سپایه بود. برای خودمان چه ممتاز و گران قیمت بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد می کردم. اما در این یک ماه نقاشی داشت از یادم میرفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید. بالاخره نمیخواهی روزی پیش ماکان نقاش بروی؟ پدرم همیشه قبل از شام چند گیلاس عرق می خورد و وقتی گیلاس های دوم را سر حال بود. و این بهترین موقعی بود که میشد با او صحبت کرد. از گیلاس چهار رون به بعد دیگر مست بود. گفتم، آقا جون رفتم. خب چه شد؟ آقا جون، این خودش چیزی بلد نیست. چه میگویی دختر؟ آقای سارمال ممادک از کارهایش خیلی تعریف میکرد. او که دیگر خبره است. مگر ندیدی چه تابله های قشنگی در خانهش دارد. آقا جون از من بپرسید. هیچ چیز سرش نمی شود. اصلا کارهای مرا رو نگاه نکرد. نفهمید. از خودش هم چیزی در کارگاهش ندیدم. چه آدم متکبر از خود رازی؟ پدرم دیگر حرفی نزد. وقتی سره خوری با کسی حرف بزند، یک صفحه روزنامه را که دست من و یا مادرم بود برمی داشت و به آن نگاه می کرد. اما من نگذاشتم. آقا جون، مادرم سرش را بلند کرد و به من نگری است. او به خوبی میدانست وقتی من با این لن شروع می کنم حتما تقاضایی دارم. این راه هم میدانست که پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خش نمیداد. مخصوصا وقتی که خودم را پیش او می میکردم. پدرم پرسید: «چیه؟ مرا بفرستید بروم فرنگ یاد بگیرم. اینجا که کسی نیز پیشش بشود کار کرد. پدرم از زیر عینک چشم ریزش را ریز در کرد. نگاهی به من انداخت اما چیزی نگفت مادرم که آن طرف کرسی نشسته بود و داشت میکشید می‌کشید گفت خوبه. این اینو دیگر از کجا یاد گرفتهی فرنگ به چه درد میخورد؟ به قول خودت آنکه از فرنگ برگشته چه تحفیی است که تو بشوی دختر را چه به فرنگ رفتن پدرم سرش را رو از روی روزنامه بلند کرد و گفت اگر پسر بود ایبی نداشت آخر آقا شما چرا هرچه او میگوید دنبال میکنید؟ کی دخترش را تک و تنها به فرنگ فرستاده؟ تنها چرا باشد؟ مگر سرهنگ خود ما سرپرست محصلین نظامی در پاریس نیست؟ پرسیدم کدام سرهنگ؟ پدرم گفت سرهنگ آرام مادرم گفت پسر خاورخانم خانم نوی اموی آقا جونت پرسیدم ندیدمش؟ چرا؟ الان چهار پنج سال است که آنجاست. شاید یادت نباشد. پدرم دیگر حرفی نزد. عینکش را از روی چشمش برداشت. به من چشمکی زد و گفت: فکرش را کنم. دیگر دست بردار نبودم. در غیبت مادرم چرخ پدرم را چنبر کردم تا اینکه بالاخره به فرنگ رفتم. چه چیزها دارم به شما میگویم. نمیدانم گفتن اینها لازم است یا نه. اما این تاری که گفتم برای خودم بهتر است دلم میخواهد همهاش را تعریف کنم. بگویید همه اینها برای من مفید است من اول اگر به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده اما حالا دیگر به زندگی شما هم علاقه من شدم و میبینم که تار و پود زندگی شما در هم بافته شده تا کسی شما را نشناسد استاد را هم نخواهد شناخت درد همینجاست، است که خود من هم میکنم، مرا هیچکس کس نشناخته، خودم هم خودم را نشناختم، استاد شما هم اشتباه کرده، ببخشید خانم، اما تمام کسانی که پابند به اصول در زندگی نیستن و از این شاخه به آن شاخه میپرند، همینطور فکر میکنن، آقای نازم، خواهش میکنم حرفای شاگرد مدرسه ها رو به من نزنید، قبل از شما کسان دیگر هم این ها را به رخ من کشیدند دلیل ندارد که آنقدر مرموز باشید مرا مسخره نکنید خواهیدید دید که اینطور نیست بدبختی من همین است این جمله را با چنان لحن غمانگیزی ادا کرد که من متاسف شدم و از نیشی که به او زده بودم پشیمانی به من دستد میدانید چرا همش را برای شما میگویم برای اینکه پس از او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 چشمهایش را بست و من نگاه خریداری به او انداختم. بینی کشیده، سلف مشکی چیندار، لب های نازک لطیف و بزک کم، اندام متناسب ولو کمی کوتاه ساخ های مغزون، همه اینها زیبا و فریبنده بود. اما راست می این نخستین باری بود که زن زیبا را تماشا می‌کردم. فوری دختر جوان نوزده بی ساله را که تنها در خیابان پاریس گردش می‌کرد جلوی خودم دیدم. برای اینکه نگذارم این حالت غم زده او مرا تحت تاثیر بگیرد، کشمه کش کردم و گفتم خیال کنید که من اینجا نیستم. خیال کنید که تنها برای خودتان حکایت میکنید حتی نگویید که من چنین و چنان کردم بگویید که آن دختر بیست ساله اسمش را فرنگیز بگذارید. اسم خودتان که فرانگیس نیست؟ گفتید آن دختر بیست ساله تنها به فرنگستان رفت. نه. من نمیخوام داستان زندگی خود را نقد کنم. در زندگی من هیچ چیز ای نیست. من زندگی نکردم. زندگی من همون است که همه دختران طبقه من داشتند. آمدند و رفتند. مزه خوشبختی را نچشید و واقعیت آن را ادراک نکرده درگذشتند. چه چیز من میتواند برای شما جالب باشد؟ به علاوه، سرگذشت من هنوز تمام نشده. من فصلی از کتابی هستم. زندگی من فقط تا آنجا که مربوط به زندگی اوست جالب است. اگر او نبود، من هیچ بودم. او بود که شبهی از زندگی واقعی انسانها را به من نشان داد. و من از فرد ضعف کور شدم و نتوانستم لذت زیبایی آن را بچشم. من میخواهم روابط خود را با او بگویم. بگذارید کمی فکر کنم. در سال 1930 گمان می کنم در عواست سال سی در فرنگستان بودم. یک سر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم. در ایستگاه سرهنگ آرام به پیشوازم آمد. در پاریس در مدرسه هنرهای سیبا اسم نوشتم و خیال می کردم که دارم درس می و نقاشی یاد می گیرم. برای ورود به مدرسه هنرهای سیبا بایستی مسابقه ورودی داد. اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان است، خارجی ها همه چیز میتوانن یاد بگیرند اگر چیزی هم دستگیرشان نشد دیپلم را در هر صورت گرفتند یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم اما بیشتر طول کشی تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم ظاهرا زندگی برای من همش هوس بازی و تفریح و سرگرمی بود اما در باتن همیشه خود را بدبخت میدانستم نمیفهمیدم که چگونه میتوانم از این ضلت رهایی یابم ببینید، خیلی بلاها آدم در زندگی به سرش می و خودش مصبه به آنهاست. منتها ادراک نمی کند. یا وقتی به ریشه آنها پی می برد که دیگر کار از کار گذشته است. مال من اینطور نبود. بهترین لذتها وقتی تکرار شد زجر و مصیبت است. تفریح و ولگردی من اجباری بود. من نمی خواهم خود را تبرئه کنم. از آن سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود، تا آن جوانک بیمزده فرانسوی که از ریختش بیزار بودم، همه هرکدام به نفعی میخواستن شوهر موقتی یا دائمی من باشم. من گناهی نکردم که لازم باشد در مقابل هر انسانی، هر انسان با وجدانی خودم را تبرعه کنم. نه، قصد من تبرعه خود نیست. مقصود این است که شما با این مقدم حالیتان شود وقتی من به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز تفکری با او، با این استاد شما ماکان. با دوست، با رفیق، با مرد دلخواه خودم روبرو شدم. هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد، ازش رو مصیبت است. فکرش را که بکنم ریشه بدبختی من در رفاه و آسایشی است که از توفولیت در آن نشو نمایافتم. خوشگلی من برای جان من بود. خوشگلی به اضافه زندگی بیدرد سر. این دو تا با هم دست به یکی کردند و مرا به این روز سیاه نشاندند. شهرت افتخار، احترام، همه اینها خوب سودمن و کامیابی است. اما هر آدم مشهوری درش می میخواهد گاهی میان جمعیت گم شود، میخواهد میان مردم بلولد، لذت های آنها را بچشد، دل هوری آنها به سرش بیاید. آن رفاه و آسایش برایش لذت بخشتر است. اما وقتی همه کس او را میشناسند و همه مردم او را با انگشت نشان می دهند، دیگر آزاد نیست. آن وقت دیگر شهرت درد سر آدم می شود. خوشگلی من همین طور بود در مدرسه هنرهای زیبا پر پیر هم که با من صحبت میکرد بیشتر به چشم های من مینگرییس تا به کار ناقابل من اصلا فراموشش میشد که باید به من درس بدهد. بیخودی و نادانسته از کار من تمجید می کرد. دانشجویان سر من با هم دشمن خونی بودند هر کدام یک لطف سرسری مرا به رخ دیگری کشند. چقدر دلم میخواست در مدرسه سر کار؟ آنجا که دل من از فرد شوق میتپید آرام بودم. در آن زمان هنر نقاشی برای من جای هر انایتی را میگرفت. عشق، شوهر، افتخار، احترام اینها در مقابل شعله شوق هنر دود قلیز کور ای بود. یک روز در کارگاه مدرسه ناگه ها متوجه شدم که بیشتر دانشجویان دارن طرح صورت مرا میکشن. این اواخر که با سرهنگ آرام به مجالس شب نشینی سفارتخانه خانه ها و خارجه فرانسه میرفتم، روزنامه نویسها داشتن از صورت من پول در می آوردند. یک جوجه نویسنده فرانسوی یک رمان درباره من نوشت. سرتاسر سر داستانش شرح عشقی بود که به یک دختر هندی در دل می پرورن. در تئاتر، در سینما در کنسرت، در گردشگاه های عمومی، در یهعلاق ها، در سخنرانی ها هر جا میرفتم همه چشها متوجه من بود. و من از این فضل زجر میکشیدم. همه مجیز مرا میگفتند. از همه بدتر، رفتار هم وطنان خودم بود. آنها که دست رد به سینهشان زده بودم همه جا پشت سر من آنچه ناشایست بود میگفتند. حتی یکی از آنها نامی به پدرم نوشت و داستان از من نقد کرد که باور نکردنی است. پدرم مرا خیلی دوست می داشت و از همین جهت به من اطمینان کامل پیدا کرده بود و طبیعی است که این نامه ها نمی توانست در رفتار او با من اثری بگذارد. امان از وقتی که با کسی به مناسبت صفتی که دلپسند من بود گرم می‌گرفتم اینها دیگر مرا می‌پرستیدند و حاضر بودند سر من چاقو کشی کنند اما دوستی آنها مرا عذاب می‌داد با آنها دوست می‌شدم مثل برادران آنها را دوست می‌داشتم حاضر بودم برای آنها همه جور فداکاری بکنم به من کتاب می‌دادند می‌کوشیدند مرا برای یک زندگی مفید جلب کنند گاهی از من سوء استفاده سیاسی می‌کردند. های پستیشان را به من میدادند و من آنها را به ایران می‌فرستادم. وقتی پهلوی من بودند همش از حوزه و کنفرانس و میتینگ و دمونستراسیون صحبت می‌کردند. از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مسلّت مردم حرف میزدند. و من لذت می‌بردم که دارم با آنها اخت می‌شوم. اما همه اینها یکی یکی به من دل میباختم و ارزششان در نظرم کم میشد میبینید با چه بدبختی دست به گریبان بودم فقط یکی از آنها استثنا بود خوشبختانه آن یکی نامزد داشت و با او زندگی میکرد من هم توانسته بودم اطمینان این دختر ملوس را جلب کنم و به او بفهمانم که به نامزدش نظری ندارم این تنها دختر بود که مرا دوست داشت و خدا میداند شاید هنوز هم دوست دارم همین جوانه که نقاشی یاد می گرفت و همیشه علیل و ناخوش بود، همو باعث شد که من در فرانک هم از سال چهار بد بعد به فکر استاد باشم. و وقتی به ایران آمدم، هیچ چاره ای نداشتم جز این که او را ببینم. و با تمام نیروی خود به خدمت او کمر ببندم. از این یک جوان گذاشته بقیه کسانی بودند که در نبرد با من واخورده بودند. و یا در خیال پیروزی بر من، کاخها در سر میساختند نتیجهش میدانید چه بود؟ من میگویم. به شما سریع هم میگویم تا بعد آسانتر بتوانم از خود دفاع کنم. تا بعد بتوانم شما را متقاعد سازم که او، استاد، چه اشتباهی کرد؟ این چشمایی که از من ساخته مال من نیست. نتیجهش میدانید چه بود؟ نتیجهش این بود که من کینه ای از این عشاق ابله به دل گرفته بودم و از زجرانها لذت میبردم کیف می کردم آنها را بچزانم هرچه آنها می میشدند من سختتر گرفتم این دیگر زندگی من شده بود نقاشی تحصیل در فرنگستان در مدرسه هنرهای زیبا اینها دیگر وسیلهای بود برای سرگرم کردن من بگذارید حادثهای که در زندگی من اتفاق افتاده برایتان بگویم اگرچه ارتباطی با زندگی استاد ندارد اما دلم میخواهد این پیش آمد را آنطوری که در واقع بود برای شما نقل کنم گمان می کنم آن وقت مرا بهتر خواهید شد.